بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاه والسلام علی رسول الله وبعد گفتیم اینجا بعد از اینکه اشاره بفرموده خداوندا یا ای الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یوتکم کفلین من رحمته ویجعل لكم به ویغفر الله غفور رحیم ستا گفتیم اینجا خداوندا فضیلت و فضل رحمتی از سوی خداوند و دوومی نوری که در تاریکا بشدت پیدا بکنیم و سومیشم کفاره گناهان قرار دادن و بخششای گناهان هم ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطايا ثم لغیتنی لا تشرک بی شیئا بقرابها و مد خدا شرکی به من آوردی اون گناهارا درا قرار میدم sabab va padoshtaro midad fazilati islam ba yag allah ya'ni ba islam khodavand gunahon inson ro mi'amurze va hadisi go مثل hadis ibn ab ibn omar radhiyallahu anhu matalukum matal ahli kitab fa matali rajulin yasta'jiru ujra matal shakhsin ba mizani misl shu miga misl shoma misl kasani atan az طلوع خورشید تا وسط روز برام من, برا من کار میکنه بنداده یک قیرات قیرات یک بار نمی هست استلا میگه پس یهود اون کارو کردن سپس خداوند گفته کی از وسط روز تا نماز عصر این کارو میکنه با یک قیرات نصارا گفتن ما انجام میدیم سپس خداوند گفت از عصر تا غروب خورشید که انجام میده و دو تا قیرات بهش میده بعد رسول الله صلی الله علیه و آله هم شما اونهایی عملکم اونها یهود خدا ازشون چقدر کار تا دو ق تازار 6 ساعته نه تا چه ساعت از, از چهاعت یا پنج ساعت از 10 تا از یک تا پ ما از 5 تا ه ما چقدر دو ساعت اون ۶ ساعت بعد 5 ساعت ساعتبال ما تقریبی هست ولی که مای ما که دو ساعت انجام مییم چقدر دو قیرات و 6 ساعت انجام میدن؟ یه قیرات. فضیلت کدوم یک قیفضیلت کدام کدوم گوش داره یلت ما مسلمان ها با اون عمل کم ما بیشترذ که فبل اللهی ت یهشه فصل خداست برکت این خطنه میتونه خدا رو ذلیل اس و لا یسالوا عما يفعل وهم یسالونه خدا حق اونها چیزی کم نمی کنه وقتی که به ما میده به ما در بیشتر میده فضل و منته خودشه از اونها چیزی کم نمی کنه که بخاله اونها اعتراض بکنن یهود میگه ناراحت شدن فقط بهت یهود و نصارا یهود و نصارا و راسنا و قالوا ما لنا اكثر عملا واقل اجرا ما چرا بیشتر عمل بکنین پاداشمون کمتر باشه قال هل نقصتكم من حقكم قال هل نقصكم من حقكم شیء ایه خدا میگه از حق توش میگه چیز کم تا قالو لا قال ذلك صغل اوتیه من اشه خدا میگه که این فضل منه برای که کسی که بخام میده خب اینجا الان مثال اومد ما مثال ها مثال اینجا مثال اینجا مثال ایک شخصیه مثال ایک حالت نه مثال خدا به یک شخ خدمت یا ک ک ک ک ک ک خ .k. .k. .k. .k. و از آن کسی که در مقابل پاداش کار میکنه زحمت میکشه آیا این مثال حقیقیه یا مجازیه یعنی ما حقیقتن یک کارگر و یک کسی هستیم که در مقابل کرایهی داریم کار میکنیم یا اینکه نه این اسباب تقریب ذهنی هست و رفتی به خدا نداره یعنی فقط خداوند داره یک تقارب ذهنی برای ما ایجاد میکنه یعنی آیا ای واقعیت که ما اجیر پیش خداوند یا اینکه نه فقط یک مثالی هست برای اینکه تو ذهنمان بیاد که در ما در مقابل مثلا کارمون مسخویم یا حالا حتی اینکه بعضیا مثلا گفتن که ما مامورین به ظاهر بعضی بعضیا گفتن که که ما در مجازم بگیریم به هم معنی حقیقی آخر نهایتش یکیه اختلافات هست بین شرح حدیث ولی اون چیزی که واضحه از این حدیث بحث مثال حسی که خداوند داره به ما میزنه كيمه صالحتي حقيقيه لسه حقيقية الدرقران ميجي وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يثوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط المستقيم مثلها حتى خدام الدرقران ميذره انجام هم نمينه ما الان بمعنى هيك اجيريكتي كدون قال اجر فاداشي خدام الازمون خاصه ان ما هيكاره بكونين تا فاداش خدا بهم یک خلل اعتقادی اینجا ایجاد میشه اشعار توصوبت های شعراوی هم زیاده چون بالاخره شعراوی مشعریه میگه که من توصوبت هاشون میگن که اگر تو نماز خوندی به خاطر که خدا ثوابه بده خدا جهنبید نکنه تو مشرکی اگر تو نماز خوندی که خدا عذابت نده تو رو بهشتی بکنه تو خالصان خدا رو نیفرستی تو به خاطر بهش خدا رو میفرستی تو نیت چی اخلاص نداری. تو سعمتيه عجر خداست نه خود خدا پس تو اخلاص در عبودیت خدا نداری آیا این حرف درسته خدا گفت رو بهت میدم گفت بهش بهت میدم رودی از عسل بهت میدم ما وقتی که این عجر را از خدا میخوایم و تلاش میکنیم برای رسیدن به این اجر از غیر خدا اجر میخوام یا قراره که خدا برامو عاجز بده ما از خود خدا اجر میخوام ما از غیر خدا نمیخوام که ما مشرک بشی شرک وقتی به حساب میان ما از غیر خدا بخوام خود ان ان روض يا ان ميدلان ان بهشت يا ان حور عين مو خودش بخوام که خودش به ما بده از حور عين كتي مسيون مثل ابي حور عين تو برای من باش من زحمت ميكشم که تو برای من باشی بلي اينجا ميشه شر بلي الان تو زحمت ميكشي طلب اجره ات كيه انا با اجره اسخود بس این حدیث اين حديث رد بركيه بر اشعاره و مواتر دييه ما اجيرين مو اجيرين حقيقا اجيرين يعني چه اجيرين یعنی این که ما به خاطر اجر کار میکنیم، تلاش میکنیم، دعوت میکنیم، دنبال علمیم، دنبال عبادتیم، مجریم، دنبال اجریم و طلب اجر خواستن مزلتی است اگر مزلت بود، اگر ذلت بود، اگر شرک بود، هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق نمیکردند مقابل ذکر، اینقدر در مقابل نماز، پاداش خای قال وفيه ايضا انبيو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله, الله عن الجمعه من كان قبلنا" فكان ليهود يوم السفت وللنصارى يوم لحب فجاء الله بنا فهدان ليوم الجمعة وكذلك هم تبعوا لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة وفيه تعليق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحن الحنيفية أستمحا حديثها فليكة البخورية أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا نوز جمعي بنوان عيدها في قبر المسلمون وذوك ثنيو بمراهك روح و ان هذا صراط مستقیم راه که خدا تعیین کرده و راهی که خدا خواسته و راهی که ازش اعلان رضایت کرده برای اون روزی که باید عید باشه عید حقیقی باشه چه روزیه جمعه کسانی دیراه رفتن کسانی بیراه رفتن این روز را جابجا کردن رفتن شنبه یهود رفتن یک شنبه چه کسانی نصارا بیراه رفتن از راه نجات خارج شدند از اون راهی که خدا اعلان رضایت کرده خارج شدند خدا این اشخاص را میگه شو شکن اضال الله علی الجمعه من کنه قبل کسانی قبل از ما بودن یهود روز شنبه را گرفتن برای جمعه و نصارا روزی یک شنبه. میگه فجاء الله بنا فحدان علی اومد و خدا اومد و موت هدایت کرد به روز جمعه این چیه؟ توفیق خداون این توفیق را به امت اسلام داد که بدونن روز جمعه چه روزیه؟ از روزهای هفته سال جمعه روز اول هفته است یا روز آخر هفته؟ جمعه روز اول هفته است یا روز آخر هفته؟ جمهور ائمه میگن جمعه روز اول هفته است. جمهور ائمه میگن روز اول هفته است. ها گفتن که روز آخر هفته است. اونایی که گفتن روز اول هفته است به این در حدیثی گفتن که یهو تابع ما حسن چون شنبه رو گرفتن به نصرات تابع هم جو بعد چون میگه شنبه و یک شنبه بعد از جمعه اومد پس جمعه اصله ҷумъа ва иде ба онҳо табеъ доман ин истилоли ҷумҳуръа яъни ба ин ҳадис аммо қадман маҷлиси санадат самбато гуфтанд яъни хуб аллан ин ҳадис ки ропти доре ба фазилати ислам бахти гумроҳии аз сияяти бахти тавфиқ ва фазилати ин уммати ки худован дар хаи гумроҳиро ба استقامت کردیم، راه روش رسول الله صلی الله علیه و را گرفتیم و اسلامی گرفتی که رسول الله روش بود. اگر ما اون روش را گرفتیم ما دیگه گمراه نمیشیم و این چیزی که خدابند اگر که از ما خواسته انجام بدیم درهای گمراهی برای ما بسته میشه. همونطوری که بر رسول الله صلی الله علیه و بسته شد و هدایت یافت اینجا. حدیث بعدی که بهش اشاره میکنم که امام بخاری به طور معلق میگیره روایت میکنه، حدیث موصوله و صحیحه از رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امان بخاری در کتاب ادب افراد به متصل و بسند سعیل این روایت را روایت بکنه هرچکی این روایت الان با این سیغه که داشتیم با سیغه مجزومه و جنگور ایمه از محدثین گفتن اگر با سیغه جه کمان بخاری روایت بکنه دلگایت بچی داره؟ سحیت و نسطن این چیز امان بن حجر نقل بکنه حدیث قبلی نسف کمه یکی کش مند قال فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعه وكذلك هم تبعنا نحن الاخرون من أهل الدنيا والاولون يوم القيامه حسب ما ان شرحنا ذلك نحن الاخرون من أهل الدنيا ما اخرين امتي كاز امتها فرساده شده است بیان بران اینکه اومدن قبل پیامبر پیامبر الله صلى الله عليه وسلم من اخرين امته امته من یعنی امته يوم القيامه اولي امتي هستین که در روز قیامت هم کش الله بعدم اولی کسی که بهش بهش روز میشه کیه رسول الله و مسلمانان اولی کسی که حساب کتاب میشن کیان امه اسلاما قبل از امت های دیگر حساب کتاب میشن قبل از امت های دیگر وارد بهش میشن اینا فضیلت های این امتند نحن الاخرون من اهل الدنيا والاولون يوم القيامه در این دنیا آخری بین امت های که گذشتند بحث اعتقادیه غلام میرزا احمد قاضی وقتی که تو هند کرد تحریف کرد خود اون داره اصلا میگه خاتم الانبیا خاتم النبیین یعنی خاتمه الانبیا اندلال بر ختم نبوت یا رسول خدا سان لا نبی بعدی کوف لا نبیون لا من پیغمبر الله هستن گفته پیغمبر لا پیغمبر بعد از ن... من است لا نبی پیغمبر نیست نبی توف لا نبی لا پیغمبر بعد از من الله ختم ختم نبوت نشوده ادعای پیغمبری گفت من پیغمبر خدا هستم فرقه احمدیه معروف هستند و لمیرزا احمدی قادیانی ادعای بلال در چی میده بر ختم نبوت دیگه پیامبری بعد از پیامبر اساس بصراحت دیگه نمیتونه این حدیثو تحریف کنه این حدیث قابلیت تحریفو داره اونجا حرکت گذاری شواهد کرد آیه قرآنو عوض کرد این حدیثو میخواسته که نحن الاخرون من اهل الدنيا آخرین امتی از اهل دنیا یعنی آخرین بر روی این گذاشته امت محمد صلی الله علیه و سلم که غیر از دین این خداوند نمیكونه و نمیپذیره بندگیارش که حادمه در باب بعدی. ان با من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. کسی غیر دین اسلام دین رو انتخاب بکنه خدا ازش نمیپذیره. یک مسئله‌ای که باز متعلق به همین حدیث که اشاره هست. اول الله اليهود اه اهل الكتابین. اصل جمهوری جمهوری جایی از اجتهاد شخص عالم میگه اجتهاد میکنه گمراه میشه در اون مسئله. یعنی به حقیقت نمی میره یه جوری از جهل شخص اجتهاد میکنه و گومروهی به وجود میاد. حضرت علی رسول الله صلی الله علیه و آله الله لا ينتزع هذا العلم انتزاع انما ينتزع بقرض العلماء. حتی اذا الامر بقاله اتخذ الناس رؤوسا جهالة فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. فضلوا واضلوا. خودشون گومروه و مردمم گومروه میکنن با چی؟ با جهل. یه جایی هست انسان با علمه. بلکه اون علمش و اجتهادش به خطا الان اینجای یهود و نصارا اجتهادشون به شما دقت بگیرید وقتی که ما میگیم فلان داعیه یا فلان عالمی اشتباه کرد، کاش لغرید، ظله او فيه ضلال اینها درات بر قطع در عدالت و دیانتش نیست، لازمه اش نیست یعنی. اصل اغلال گمراهیه. شخص گمراه شده در این مسئله مقید در این مسئله، نه که خودش گمراهه. مطلب و درست بگیریم. بس حدیث فرقین واشیت. وقتی که رسول الله صلی میگه که افراد امت من افراد فرق همه در جهنم الا یک دلیل بر اینه که اون فرقه که ناجیه است مثلا من میگم فرقه ناجیه معانه انا علیه علیهم اصحابی کسی که راه رو روش اهل سنت رو بگیره این دلیل بر اینه که من بر خودم که من که سنیم بگم که من بهشتیم شیه جهنمیه خیر بر خودم نمیتونم فیتم نمیتونم تظیق بگم چون الان من سنیم و راه روش پیامبر رو گرفته پس من نجادات. کسی نمیتونه خودش رو تنظیم میکنه ال عبره بر کسی از خاطرش نمیدونه ما به راه میریم نه راه درست راه رسول اللہ علیہ این آیات دلالت داد ولی من خودم آیا واقعا ملتزم و استقامت بر این راه دارم اون مسئله دیگرم و اون افضاد دفرقی که به گمراهی رفتن اونها هم من نمیتونم حکم به جهنم اونها را بدم سکسکشون آم بر راهشون رو میدم این راههاش به جهنم میبره و لیکن شاید اینها چی معظور به جهل بشن و شاید به اندازه گناهشون از آن بکشم او وارد بهش بشن. این حدیث ضلات و قالد مخلد بودن جهنم مثل یهودی و نطی و مجوسی بودن که نیست. به خاطر همین اصلا گفت سطستر با عمتی گفت امت من اومت اصلاصقالد مخلد در جهنم میشن؟ و از بح در جهنم نیست و بحث تعیین افرادم نیست. و بحث این که وقتی که ما یک انتقاد کردیم گفتیم در اینجا اشتباه رفته، گمراه شده، دلايت الحكم بر خود شخصی است این شخصیه خود این شخص جهنمیه واضح؟ فبریم به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلام احب الدين الى الله الحنيفيه السمحه احب الدين الى الله اولا ان جو الدين با الف و لام است الدين الى الله منظور الدين الف و جنس یا اگر جنس ینی تمامیه ادیان تمامیه ادیان تمامی تمامیه ادیان سابق نزد خداوند اون دینی درش میل انحراف از شرک و و گناه و باشه الحنفیه حیف انحراف از شرک و کفر درش آسان اصل سماحتی آسانیه این الفلام اگر ما بخواد از تمامیه دین ها جنس بگید جیس دین احب چه دینیه يجب فقط إنه سنتهي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب فقط إلف الدين هو مجموعة يعني إسلام احب الدين احب الإسلام الى الله احب الإسلام يعني إسلام كرسول الله رشبه ماذا هو إسلام؟ الحنيفية الدين حنيفة ما يليز شرق و بدعة و غناء كي درش آساني هست درش تخخيري و توندي و خشفيني اكسه سؤالي كي ما تره ما شهد انجا قف احب الدين إلا الله اگر ما بقيم أحب الدين هو مجموعة احب دین محبوبترین دین از خدا دین اسلامه. شخص میاد میگه خب ممانعتی نیست از اینکه دین های دیگه هم محبوب باشه پیش خدا. محبوبترین دین ها دین اسلام نه، پس دین یهود هم محبوبه شخص اینجینی مفهومی را از این حدیث بگیره، میگیم خیر. و همیشه نمیشه. مثل فرموده خداوند اصحاب الجنه یومئذ خیر مستقرا واحسن مقيلا. و احسن ومقیلا بهترین جا بهترین خوشی دارن. اصحاب الجنه یومئذ خیر و مستقر و احسن مقیل یعنی جهنم هم خوبه بهش بهترین جاست درسته بهترین خوشیه احسن و ها آیا این دلیل داریم میده که جهنم جای خوبیه نه پس افضل تبذیل همیشه در عادت خوب بودن مفضول نیست افضل تبذیل همیشه در و خوب بودن مفزول نیست وقتی که اینجا تفاضل اومد این چیز خوبه دلیل بر این نیست که این چیز خوبتره دلیل بر که اون چیزی که مقابلشه بعد نیست یا خوبه دلیل بر این نیست مثل این آیه و احسن و مقیلا پس محبوبترین و برترین و بهترین دین از خداوند اسلامه که غیر از این دین بعد از فلسفه‌یان هر هیچ دینی رو خداوند نمیپذیره الان ان شاء اینو بحثش خواهیم کرد ثم وحين الیک ان اتبع ملته ابراهیم حنیفه و ما کنا من این حنیفیه هست خداوند نزد من خاصه میل و میول گفتیم از چه و ان سامح و يضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم دين اسلام مد با اسونی كه اون سختی هاي که بر امتاي پیشین بوده رسول الله صلي عليه از ما رخ بکنه و خدا من ميگه و ما جعل عليكم في من حرج و دران دارند براي شما سختی نگذشت اون شخصی که كه يكيشون گفت من تهجد ميخونم هر شب يكيشون گفت من ازدواج نميكنم يكيشون گفت من هر روز روزه ميگيرم سختی رفتن بر خودشو رسول گفت انا اتقاكم لمن اتقاكم يا اسمون ولی کچی می خوابم و شب تهجد میکنم روزی روزی میگیرم روزی میخورم و ازدواج هم میکنم با با تقوا ترینم است این دین اسلامه دین آسانی هست نه دین سختی نه دین قتل و کشتار مثل اون چیزی که ما میبینیم البته خداوند از بس به خوارج میگن یقتلون اهل الاسلام و يدعون اهل الاسلام مسالمون و رانگی میکشن مشرکین رو, رو رها میکنند حال امه مسلمانان رو در همدیگر میگذارند میگوشن همه هم مدعی اسلام رو را دارن ولی با یک افراط تفریدی فوت در جهنم توجب و با توجه به اون افراد و تحفیزشون دران قتل کشتر رو انجام میدن بس دین اسلام دین یسر و دین آسانی هست و از این حدیث اون قواعد فقی شده مثل المشقت و تجلب و و دیگر قواعد که در اصول فق و قواعد فقی هست و از آسانی دین اینی که در سفر انسان روزه میتونه نگیره که میتونه نماز را قصد کنینا از فزیدت ها فزیدت های این دینه یعنی ای ا حب و دین الله الحنفیست الحنیفیست سمحه بخاطر سمحه بودنش بچه شایده زرچیه سمحه چرا سمحه هست؟ سخت نگرفت آسانی فضیلت دینه سخت نیست آسانه دشوار نیست این دین این دین آسانه فضیلت این دینه دین یسر آسانیه در اعتقادش دین یسر در روزش دین یسر در زکاتش سمحه همی میتونن احکام معاملات و زکات و ربا و احکام نماز چطور نماز ب накрин است سریه فاتحه یی واز بهرهاف زبونیتی میکنین سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله تفکیش بی دین واسو عربی همین بیت سریه فاتحه میکنه بگه سبحان الله سماحت در فکرش نیمت بهمون بگه قدیم داریم جوهره و عرض داریم ممکن الوجوده واجب الوجود داریم بذاته و ممکن الوجود داریم قدیم که واجب الوجود جوهره درش عرض نمیاد جو هر چون قدیمه درش تحول نمیاد اما ممکن الوجود که حادثه هر حادثی دلاغت بر حدوثی میخواد و هر حدوثی دلاغت بر حادثهی میخواد که اون حادثه دلاغت بر محدث میده که این محدث دلاغت بر مخلوق بودن میده که این محدث نشانه عرضه و عرض خودش را نمیتونه ابراز بکنه الا در محلول و در جایگاهی دیگر مثل رنگی که در آب ریسته گفته؟ یچن برنامه دیدین خیلی واضحه برید و پدرتون بگید مادرتون بگید ما خدا داریم قدیمه جوهره و عرض داریم حادث مخلوقه هر حادثه دلالت بر حدوسی میده و هر حادثه این بر وحدتی میده این تسلسل حوادثه هر تسلسل حوادث, حوادث دلالت بر چی میده بر عرض و عرض دلالت بر چی میده بر خلق و ایجاد بس هر چیزی در این تسلسل حوادث بیاد میشه مخلوق و اما قدیم درست تسلسل حوادث نمیاد قدیم تزلی واجب الوجوده ممکن الوجود نیست خداوند نمیتونه حرف بزنه خداوند نمیتونه بشنوه خداوند نمیتونه بدونه چی چون درست تتالسل حوادث میاد من الان حرف میزنم حرف یک دقیقه قبلام با, دقیق با الان فرق میکنه یک دقیقه گذشته الان از حرفم خداوند داره علمش تازه میشه این چی میاد حدوث در فعل خدا درش این در خدا این تتالسل حوادث در فعل خدا دلالت بر چی میده مخلوق بودن پس چون خداوند حادث نیست عارض نیست پس در دهن خداوند نمیشنود یعنی پیامبر اساساً به نظر شما میومد اینطوری با صحابه صحبت میکرد میگفت ای صحابه خداوند گوفت نیست که مثل چیزی و هو السمیع البصير خدا تو نمیشنوه فکر نکنید خدا گفته من میشنوم میشنوه فکر نکنید خداوند میگه میبینم خدا میبینه دا اگر بگید ببینه خدا میبینه خدا میشه حادث حدود بر عراز میده و خداوند جوهر قديمه اینطوری میگه پروفسور سادات با صحابه عاربی بو تو مجلس امام پدر امام جوینی همین بحثو میکنه در بحث صفات میگه از مواصفات خداوند اینطوری که متکلمین گفتن نیست دین خداوند درش مشقت نیست یسر آسانه برای اون پیرمرد برای اون پیرزنه برای جوان و برای مسن و برای بچه و برای همه خداشناسی که فقط خاص عبدکریم سروش کی نیست فقط اونا دین میبهم یعنی بقیه دین نمیخوام بگم من نمیتونم این خدا یسره آسانه ولقد یسرناهو لذکت هل من متکر کسی که بفهمه آسانه خوندنه و آسانه درگش شورش فهمش بخاطر همین خداون باش اون شلاغی که بر سر عقل عبو جهل و امثالش میزنه چیه میگه لای افتهم اون نفهم ها اون کودن ها میگه لا عقل و قابلیت رو نداشتن قابلیت رو نداشتن بخاطر همین خداوند تو رو میزن آدمای هایی نفهم و بیشور کی؟ ابو جل و امثالش از این قضیه ما چی میفهمیم؟ از نه از نفی خداوند فهم و در کشور لای افقهون لای علمون لای عقلون چی میفهمیم؟ اثبات زدش برای که؟ برای کسانی که ایمان ووردن و فهمیدن و متذکر شدن و عاقل شدن پس اون صحابهی که فهمیدن بقاطر همین خدا در قرام میگه فا این آمنو بمثل ما آمنتم بهی؟ وقتی اگر ایمانشون مثل ایمان شما شد اونا هدایت شدن هدایت متضمن چی کرد؟ به راه از صحابه چون اونا فهمیدن. اگر بگیم صحابه نفهمیدن، خطاب خدا، خطابشاره، فهم قرآن رو نداشتن، پس ما باید به ابو جهل و امثالشان عذر بدیم، بگیم خب اونا هم نفهمیدن. صحابه نفهمیدن دیگه. نه میتونیدین بذین من خدا چی داره میگه تو قرآن؟ بلال نمیفهمیده تو قرآن خدا داره چی میگه؟ بلال یک لیوان از قرآن فهمیده. ولی قرآن عميق اقیانوسه ما باید این قران قران اقیانوس رو بر اساس فهم نیچه باید بفهمیم باید بگیم سروش نه براتون یک لیوان بلال یعنی نه بگید نوع استهقار بس حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی اون بلال نه نمیخطابش شارح کتاب خدا چیه اگر نمیفهمید بلال امثالش کسانی که قرآن به زبان اونها نازل شده و در وسط عرب بودن زندگی میکردن این درار در چی میده عذر به جهل مخالفین شریعت این ابو جهل منظور اولو نمیفهمه پس چرا خدا سر بکنه چرا خدا من تو بزنه به ابو جهل و امثالش بگه لا يفقهون لا يعقلون نباید خدا من اینطوری تو سری بهشو میزنه دین دین آسونی آسون در فهمش آسون در عمل کردن بهش آسون در التزام بهش پایبندی بهش در کل قوانینش همه اون چیزهایی که در شرع اومده آسونه نه که یک مسئله من بهتون اشاره می کنم طلبه بوده اینجا با ما قبوری شده مرده پرست شده دعوت به توسط میده تعویز میده داری دوله به همین جایی بودن یک روز تو مدرسه ولی الان دعوتگر قبوری آیا مشکل تو مدرسه هست یا مشکل تو افراده اسلام مشکل داره یا مسلمان ها مشکل دارن مشکل از مسلمان ها عبت مسلمان ها تو اسلام اسلام دین کاملیه من این توصیه میخوام باید تو میکنم از این بحث فضیلت اسلام این فزیلت وقتی این نور خدا بهمون میده وقتی استقامت بهمون میده وقتی پایبندی بهمون میده وقتی هدایت بهمون میده وقتی خداوند به ما نجابت میده و رحمتش که پلین من رحمتش بهمون میده دو تا از رحمتش بهمون میده گناهانمون رو خدا وقتی میبخشه که ما به دینمون عمل بکنیم اون روزه ها رو بگیریم اون از کار رو بخونیم باور بکنید اگر استقامت و تبدیل بر, بر رسایی که خدا از من در به والدین باق خريد و فروش و محمله حلال و حرام اگر نفهم ما هستم ك خضابان تعهد حفظ مر برقدش نقضاش احفظ الله احفظ ولو أنه, ولو انه كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم باقضام ولو انهم فعل ما يعظون به لكان خيرا لهم و اشد تثبيتهم اگر انهم وعزي خضارهم كوش بدا داد پند و اندرز خدا را گوش میدن ولو و ان فعل ما يعادون به لكان خيرا لهم بهتر بود براشون و و تثبیتا و خیلی هم براشون ثبات و استواری بیشتری بود یعنی آکنین استواری ما پایبندی ما به چی متعلقه به عمل به موعظه عمل به اون چیزی که خدا از ازمون خواسته به پیغمبرش از ما ما اتاکم الرسول و فخذوا ما نحاكم عنه بعدو بغض رحم امام عبد الرحمن سعیدی کتاب توتیس کریم الرحمن میگه میگی که اصل گمراهی طلاب و انحراف مسلمان ها اصلش برمیگرده به عدم پایبندی به دین عدم التضام و استقامت شخص خودش ملتزم به دین نمی کنه. استقامت بردین نمی کنه باید بترسیم از این قضیه لغزش ما بر دین ما انحراف ما در سلوک منرفتارمون نتیجه شیه عدم استقرار به فکر به خاطر همین شما میبینید مثلاً کسی در شبهه نمیفته الا میشه اصحاب شهوت زنا رو حلال میکنه به اسم غیر از زنا اموال مردم را از باب نظر و از باب توسل به با اون مرده و غیر حلال میکنه بر خودش اون چیزی که خدا حرام کرده من نظر علی غیر الله فقد چیزی سبب شد اموال مردم را حلال بکنه اون چیزی که حرام بوده من ذبح علی غیر الله فقد اش ذبحی شرک چی چیزی سبب شده اون ذبحی غیر خدا هست حلال بکنه چی چیزی اون را در این هوا و هواس انداخت شبه استقامت بر دین نکردی شبه بهت میاد شبه که بهت اومد درهای هوا و هواس ان بهت باز میشه بس برای که در شبه و شهوت بسته بشه راهش چیه؟ عمل و استقامت بر دین سبحانه کلالا و حمد و صلی اللہ محمد و علا محمد